اگرچه تخم مرغ، جوانه گندم، بادام، گردو و فندق دارای همان مقدار کلسیوم فسفوری که در تولیدات لبنی وجود دارد و با همان نسبت نیستند، با این حال این مواد نیز به دلیل غنی بودن از فسفر و کلسیوم و سایر های معدنی، ویتامینها و عناصری که به مقدار بسیار کم مورد نیاز بدن هستند، توصیه میشوند. تخم مرغ که برای تولید و تشکیل ارگانیسم‌های پیچیده به کار می رود، دارای یک نیروی متراکم و قوی از انرژی و همچنین مواد مغذی درجه اول نظیر پروتوین لیپیدها، لیپیت ها، معدنی و ویتامین های A, B1, B2, D و PP می باشد. همچنین اسید های آمینه ضروری در آن به نسبت های مناسبی وجود دارد. این نسبت‌ها را در رژیم غذایی به عنوان معیار و مقیاس برای نشان دادن ارزش بیولوژیکی سایر پروتئین‌ها به کار می‌برند. زرده ی تخم مرغ دارای مقدار زیادی لستین است که مشابه لستین مغزی می باشد. از سوی دیگر تخم مرغ به نسبت ضعیفی محتوی مواد ارگانیکی دارای آهن است. پروفسور ریشه نویسد؟ خواص تخم مرغ از آن یک ماده غذایی دارویی بسیار عالی ساخته است. این حالت خصوصاً در رابطه با درمان ضعف و بیحالی، کم افسردگی جسمانی و روحی به چشم می‌خورد. این ماده حتی در ایکس رو نیز مفید است زیرا به مقدار کافی دارای ویتامین ای برای درمان و بهبود این آسیب میباشد. تخم مرغ دارویی است که در چین که این بیماری در آن بسیار رایج است، برای درمان آن به کار می رود. متاسفانه در افرادی که دچار ناراحتیهای های کبدی هستند، تخم مرغ گاهی به سختی تحمل می شود و حتی می باعث ایجاد ناراحتیهای های آنافیلاکتیک، تب، کهیر، ناراحتیهای های عصبی، یو های شدید و یا گندیدگی های ای شود. ولی در اکثر موارد با مصرف تخم مرغ کاملا پخته در مقادیر کم یا به صورت مخلوط با خامه، شیرینی‌ها و غیره میتوان به این ناراحتی ها خاتمه داد. تخم مرغ را خصوصا در تابستان باید به صورت کاملا تازه مصرف کرد. سفیده ی تخم مرغی که کنار گذاشته تا بعدا مصرف شود میتواند حتی مسمومیت های مرگاوری را ایجاد کند. مسمومیت های دست جمعی که بر اثر مصرف شیرینی‌هایی هایی که با سفیده تخم مرغ تهیه می شوند به وجود می‌آید، معمولا معمولاً بر اثر همین فاسد بودن سفیده تخم مرغ است. روش تجربی وجود دارد که معمولاً برای این که بفهمیم تخم مرغ تازه است یا نه به کار می روند. ولی این روش فقط برای تخم مرغ هایی که کمتر از پانزده روز مانده اند، و تخم مرغ هایی که در آب آهک یا در یک محلول سیلیکاتدار نگه داشته نشده باشند ارزش دارد. این کار شامل غوت ورساختن تخم مرغ در آب نمک 20 درصد است. تخم مرغ تازه در عمق این آب نمک فرو میرود. تخم مرغ دو تا سه روزه به صورت متعادل در وسط مایع باقی مانده و تخم مرغ چهار روزه به صورت عمودی در سطح آب نمک شناور خواهد شد. تخم مرغها هر اندازه که که باشند به صورتی افقی تر قرار میگیرند و تخم مرخ هایی که کاملا به صورت افقی قرار میگیرند متعلق به حدود پانزده روز پیش هستند. مرخ هایی که توسط آرد ماهی، ضایعات کشتارگاه ها، امعا و احشای حیوانات و حیوانات دریایی تغذیه می شوند، تخم آنها نه تنها بوی ناخوشایندی دارد بلکه حتی سمی نیز هست. زیرا سمومی که از مواد غذایی ناسالم به صورت ناقص در لوله گوارش مرخا تولید شده اند با خود همراه دارند. بنابراین بایستی از این گونه تخم مرخا دوری کرد. همچنین باید از مصرف تخم اردک نیز اجتناب کرد. زیرا جفتگیری پرندگانی که پاهای آنها دارای پره است معمولا در مردابها یا آبهای گلالود انجام می‌گیرد. به همین دلیل میکروارگانیسم هایی به نطفه وارد می شود که در تخم ها نیز یافت شده و می تواند بیماریزا باشد. جوانه گندم نیز مانند تخم مرغ یک ماده غذایی مغذی درجه یک است. سوای ویتامین های با ارزش A، B1، B2، C، E و PP جوانه گندم محتوی فیتین است. که یک ماده فسفوری ارگانیک و سرشار از فسفور و همچنین منیزیم بوده و عملکرد آن یک کارایی بسیار خاص را در رابطه با کارهای فکری زیاد، ضعف حافظه و افسردگی عصبی به همراه دارد. جوانه گندم علاوه بر این مواد در اندازه‌های مناسبی از همه اسید آمینه‌های ضروری برای حیات و عناصر دیگری نظیر مس روی، منگنز و آهن برخوردار است این ماده یک ماده غذایی متعادل کننده نیز می باشد که معمولاً باید هر روز از آن استفاده کرد و علاوه بر آن یک ماده ترمیم کننده غیر نیز محسوب می شود تنها نقطه ضعفی که این ماده دارد این است که در مقابل نسبت زیاد فسفر موجود در آن از نظر کلسیوم به اندازه کافی غنی نیست تنها ممنوعیت مصرف آن در رابطه با فشار خون بالاست. زیرا جوانه گندم کمی بالا برنده فشار خون است. بزرگسالان سالان بایستی دو تا سه قاشق جوانه گندم در روز همراه با غذای خود و ترجیحاً در صبحانه و غذای ظهر مصرف کنند و کودکان می توانند از یک تا چهار قاشق مرباخوری بر حسب سن برای هر سه سال سن یک قاشق مرباخوری اضافه می شود، مصرف کنند. اگر حالت فیزیولوژیکی این امکان را داشته باشد، می توان مقدار مصرف را افزایش داد. خواص تقویت کننده و حیات بخش خصوصا در گندم جوان زده بیشتر از جوانه گندم است. زیرا جوان زدن قدرت ویتامینی و دیازتازی جوانه را تحریک می کند. برای تهیه آن دانه های گندم را در بشقابی ریخته و سطح آن را با مقدار کمی آب میپوشانند تا دانه ها متورم شود. به محض آنکه این حالت پیش آمد چیزی که پس از 24 ساعت در تابستان و 36 ساعت در زمستان انجام میگیرد آن را چندین بار با آب میشویند و به همین اندازه اکتفا می کنند. روزهای بعد فقط کمی دانه ها را مرتوب می بدون آنکه آب روی سطح آنها را بگیرد گندم جوان زده را در ابتدای غذا به مقدار کمی بیشتر از یک قاشق سوپخوری برای بزرگسالان و یک قاشق سوپخوری برای جوانترها و یک قاشق مرباخوری برای کودکان و افراد مسن مصرف می کنند قبل از فرو دادن این دانه ها، باید آنها را تا حد امکان به مدت طولانی جوید تا هنگامی که تعم شیرینی در دهان ایجاد شود. این حالت مربوط به تبدیل جزئی نشاسته به قند در دهان است. افرادی که دندانهایشان دچار اشکالات زیادی است، بهتر است جوانه گندم را در ظرفی کوبیده و آن را پس از جویدن بخورند. جهت احتیاط بهتر است قبل از جوانه زدن گندم خریداری شده را به دفعات بشویید زیرا اغلب آنها را با سموم دفع آفات و حشرات آلوده می سازند. در صورت امکان بهتر است گندم را مستقیما از مزرعه خریداری کنید بادام گردو و فندق را نیز می توان به موازات قویترین مواد در صورت غذایی افرادی که دارای کار فکری هستند قرار داد این میوه‌ها ها که به مقدار زیادی کلسیوم، فسفر و همچنین ویتامین‌های های سی، بی 1 و بی 2 دارند، از نظر ترکیباتشان به پنیر شباهت زیادی دارند. و میتوان گفت که بدون هیچ گونه تردید پایه غذایی انسانهای ما قبل تاریخ را تشکیل می‌دادند. ولی چون کمی مشکل هزم میشوند، میتوان آنها را ترجیحن در اوایل غذا مصرف کرد. و بایستی مراقب بود که کاملا جویده شود. مصرف این میوه ها برای کسانی که دچار ناراحتی های کبدی یا زخم معده هستند توصیه نمی شود. یادآور می شوم که در گروه میوه های روغندار می توان از حسته میوه درخت کاج نیز نام برد. اگرچه بادام شیرین از نظر عناصر چربی و پروتئینی نسبت به گردو و فندق غنای کمتری دارد، ولی بادام همراه با این میوهها به عنوان یک منبع غذایی درجه یک محسوب می میشود. دکتر پول کارتن در این مورد مینویسد: منطقی به نظر میرسد که از آنها به عنوان مقبوی ترین عناصر غذایی نام ببریم، نه اینکه در دسر به عنوان یک غذای کمکی بی اهمیت مطرح شوند. همین حالت در مورد هسته شیرین میوه کاج، که دارای مقدار زیادی عناصر آلبومینوئید و یک روغن با تعم شیرین است نیز صادق می باشد. متاسفانه این میوه بسیار زود تند می شود. تمام میوه های روغندار هنگامی که بوداده شوند قابل حضم تر خواهند شد. برخلاف صورت غذاهایی که سرشار از کلسیوم هستند و می توان آنها را از مواد غذایی که تا کنون نام بردیم ترکیب نمود، غذاهایی نیز وجود دارند که نه تنها کلسیومی در آنها وجود ندارد بلکه از کلسیوم بدن نیز استفاده می کنند. بنابراین واضح است که باید از این گونه مواد دوری کرد. این گروه شامل غذاهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از حد اسیدی یا قلیایی هستند. از میان اولین گروه می توان صورت غذاهایی را نام برد که بیش از حد دارای گوشت خصوصا گوشت‌های چرب که تشکیل اسیدهای چرب را در هنگام متابولیسم میدهند، دارای قند که باعث تولید اسید لاکتیک می‌شود، میوه‌های ترش، برخی از سبزی‌ها به مقدار زیاد، نظیر ترشک، بولاق اوتی، بادنجان که دارای اسید اکسالیک بسیار زیادی است، های ترش که از سرکه تهیه شدهاند، و نوشابه‌های اسیدی مانند برخی از لیمونات ها و غیره هستند. از سوی دیگر رژیم‌های غذایی که بیش از حد غلیایی هستند نیز از جذب کلسیم در روده جلوگیری می‌کنند. این رژیم‌ها منحصراً گیاهی هستند. خصوصاً آنهایی که دارای مقدار بسیار زیادی سیب زمینی باشند. نوشابه‌های قلیایی آب ویشی، آب بیکربوناتدار نیز، مسلما مقدار زیادی از نمکهای قلیایی در خود دارند. بنابراین تنها در صورت تجویز پزشک میتوان به صورت منظم از این گونه آبها استفاده کرد. بخش پنجم منیزیم انصاری فعال آرام بخش و متعادل کننده مدت‌های مدیدی نقش این عنصر نادیده گرفته می‌شد ولی پروفسور دلبه نشان داد که منیزیوم به شکل کلورور عنصری بسیار با اهمیت در متابولیسم عمومی است این عنصر بیگان خاری ترشح صفرا و حرکات دودی روده را فعال کرده بر عملکرد دستگاه عصبی ازولانی و کارایی اعضای تناسلی تأثیر گذاشته و در سنتز گلوسیدها متابولیسم فسفور و کلسیوم و احتمالاً واکنش‌های سنتز مواد چرب و هضم عناصر ازددار شرکت دارد. از سوی دیگر این عنصر با ایجاد تعادل بین تحریکات شدید دارای تأثیری آرامبخش نیز می‌باشد. کمبود کلی آن در تغذیه باعث ایجاد تحریکاتی همراه با خستگی فکر، تمایل به خودکشی و رفتاری مالی می شود. این حالت در پزشکی اسپاسموفیلی نامیده شده و تا مرحله گمگشتگی روحی و اغما پیش می رود. همچنین مکانیزم به خاطر آوردن را نیز تسهیل می کند. به بیان دیگر، این ماده جوانی طولانی تری را برای مغز تضمین می کند. پروفوسور دلبه با همکاری امبرتو، نشان داده اند که پیری در سطح چند عضو خصوصاً مغز و بیزه ها به دلیل کاهش منیزیوم سلولی ایجاد می شود. دلبه همچنین معتقد است که نمک های حالوجین منیزیوم، خصوصاً کلورور منیزیوم، تأثیر متوقف کننده ای روی پدیده های سرطانی دارد. متاسفانه رژیم غذایی ما بر اثر تمدن، تغییراتی یافته و از نظر منیزیوم دوچار فقر است. آردی که بیش از حد علک شده، نمک آشپسخانهی که تصفیه شده و آبهایی که برای مصرف جمعوری و تصفیه می‌شوند، دارای مقادیر بسیار کمی از این انصر هستند. از سوی دیگر کودهای شیمیایی، منیزیومی را که گیاهان کشت شده از زمین می‌گیرند، جایگزین نکرده و همین عوامل باعث شده است، که مقدار منیزیم سبزیها، علوفه و در نتیجه گوشت حیوانات علفخاری که انسان از آنها تغذیه می‌کند، به تدریج کاهش بیابد. به دنبال آن ناراحتی‌های ارگانیکی که پس از درمان از طریق منیزیوم از بین می روند، به دلیل فقر رژیم غذایی معمول ما از نظر منیزیوم ظاهر می‌شود. البته می‌توان با در نظر گرفتن برخی تدابیر مثلا مصرف نان سبوسدار، نمک تصفیه نشده و جوانه گندم این مسئله را کاهش داد. میوه‌های روغندار، سبزی‌های سبز، کاکائو و شکلات نیز در مقادیر قابل توجهی محتوی منیزیم میباشد. شکلات به خاطر تیوبرومینی که در آن موجود است، یک تقویت کننده ی سیستم اعصاب و قلب بوده و اگر منظما به مقدار متناسبی مصرف شود، خصوصا برای کسانی که کار فکری دارند مفید است. و سرانجام میتوان از نمکهای دارویی منیزیم استفاده کرد. برخی از این داروها دارای کلرور، فلورور، برومور، یودور، فسفات، کربنات و سلفات منیزیم هستند. تنها موارد ممنوعیت مصرف آنها نارسایی کلیوی شدید و یرقان بر اثر انسداد میباشد. این رانیزمی افزاییم که از نظر بیولوژیست ها مص نیز مانند منیزیوم تأثیری آرام بخش و منظم کننده دارد. موشهای خرما که تحت رژیم غذایی بدون مص قرار گرفتهاند نسل بعدیشان کما بیش آسیب دیدگی مغزی بوده است. در این حالت موشهای خرمای کوچک واکنش‌های اقراق‌آمیزی نسبت به سر و صدا داشته و دچار تشنج شده و به حالت کاتاتونی فرو میروند و به بیان دیگر رفتاری سرد و ناراحت از خود بروز می‌دهند. مس در تغذیه انسان خصوصاً از طریق شیر و مشتقات آن، زرده تخم مرغ، جگر، مواد غذایی دریایی، اسفناج، سبزی‌های سبز، نخود، عدس، مخمرها مخمر آبجوی خشک و به طور کلی تمام مواد غذایی غنی از ویتامین های بی به بدن میرسد. بخش ششم نقش برخی اسیدهای آمینه و تعدادی از مواد پایه‌ای پوریک ها و پیریمیدیک در یکی از سمینارهای یونسکو که از یازده تا پانزده مارس سال 1968 در پاریس برگزار شده بود، سمپوزیومی به حافظه و یادگیری اختصاص یافت. این سمپوزیوم که تحت ریاست آر ماهن برگزار شد، اعلام کرد. در بسیاری از کشورها سوء تغذیه ناسهی که باعث ایجاد کمبودهای پروتئینی و یا به بیان دیگر اسیدهای آمینه می آهنگ زندگی روانی افراد را نیز کند میسازد. به دنبال آن پروفسور کرویتو از کاراکاس اعلام کرد. هیچ گنه عملکرد روحی را بدون تغذیه مناسب و همینطور توانایی مناسبی را برای منطقی فکر کردن بدون یک سیستم غذایی مناسب مشاهده نکرده است. از سوی دیگر پروفسور ماندل مدیر مرکز عصبی شیمی مرکز ملی تحقیقات علمی در استراسبورگ تاکید میکند چون این به نظر می میرسد که سوء تغذیه روی درجه هوشیاری تاثیر میگذارد در واقع آزمایشهایی که روی موشهای خرما انجام شده نشان داده اند که کمبود های آمینه ضروری برای سنتز واسطه های شیمیایی هوشیاری باعث ایجاد ضعفی بیش از 50 درصد از حالت طبیعی خواهد شد چیزی که تا حدودی توجیه کننده صفت تنبلی است و معمولاً به مردم کشورهای در حال رشد نسبت می‌دهند از میان این اسیدهای آمینه اسید گلوتامیک در درجه اول اهمیت قرار دارد این اسید یکی از اجزای اساسی آنزیمی است که در مغز یافت شده و به آن اسید آمینه یه و حافظه گفته می شود. در واقع این اسید آمینه کارایی سلول مغزی را به شکل طبیعی درآورده، توانایی یادگیری را تسریع کرده فکر را گسترش داده و به حافظه استحکام می بخشد. همچنین باعث بهبودی بیماری از خود بیگانگی روانی و درمان یادزدودگی ها می شود. این اسید آمینه خصوصا در گوشت گوساله و امعا به وفور یافت می شود همچنین آن را می توان به مقادیر قابل توجهی در شیر مخمر آبجو و ماهی نیز یافت گلوتاتیون که یک دیپپتید بوده و از تراکم سیستئین و اسید گلوتامیک به دست می آید منبع بسیار خوبی از این نوع اسید آمینه است این ماده در مواد غذایی که ذکر شد وجود دارد برخی از پایه‌های پوریک‌ها و پیریمیدیک‌ها، گوانین، آدنین، تیمین، سیتوزین که به مقدار زیادی در جگر، مغز، غلوه و مخمر آبجو یافت می‌شود، نقش مهمی در کارایی مغز بر عهده دارد. آنالیز در این مورد نشان داده که این عناصر در مغز افراد متعادل وجود داشته، ولی در مغز افراد دیوانه وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از اما و احشا در رژیم غذایی مفید باشد. ولی چون این مواد معمولا باعث تولید اسید اوریک در بدن می شوند، مخمر آبجو که بی نهایت با ارزش بوده و خواص بیشمار دیگری نیز دارد، بر این مواد ارجهیت دارد. در واقع هیچ گونه مواد غذایی با این ترکیب مناسب، و با چونین حالت قابل هضمی از عناصر مغزی یا کمیاب سرشار نیست. مخمر آبجو، محتوی 44 ممیز 19 صدومه درصد از پروتئین‌های بسیار قابل هضم، تمام اسید های آمینه مورد لزوم برای زندگی، مقدار استثنایی گلوتاتیون، لسیتین و چربی های مشابه مانند زرده تخم مرغ، لسیتین مغزی، چهارده نمک معدنی اساسی و همچنین عناصری است که در مقادیر کم مورد نیاز بدن هستند. این ماده همچنین دارای عوامل کاتالیزوری است که برخی از آنها هنوز به خوبی شناخته نشدهاند. و سرانجام شامل هفته ویتامین است که در میان آنها گروههای کامل و مقادیر زیادی از ویتامین B وجود دارد. علاوه بر آن مقدار قابل توجهی ارگوسترول در آن موجود است. به صورتی که تأثیر راشیتیسم آن پس از تبدیل به ویتامین دی چهار بار بیشتر از روغن جگر ماهی مورو است. مخمر آبجو که در هر وعده غذا با یک سبزی مخلوط یا در سوپی حل شده باشد به مقدار یک قاشق برای کودکان و یک تا دو قاشق برای بزرگسالان و افراد مسن ماده غذایی جبران کننده کمبودها، کاتالیزوری بسیار خوب برای استفاده از عناصر هیدروکربونه و یک غذای عالی برای مغز محسوب می شود. همچنین مخمر آبجو مکملی برای غلات محسوب می شود که مؤثرتر از شیر یا گوشت است. از نظر کاربرد عملی بهتر است از مخمر آبجویی که روی غلات مالته کشت شده استفاده کنید. نه مخمر آبجوی معمولی که پس از عمل آوردن آن و خصوصاً رفع تلخی آن توسط سود سوزاور، کربونات دوسود یا اسید کلوریدریک حدود 70 درصد از ویتامین های خود را از دست داده است. ماهی نیز از مواد غذایی مناسب برای مغز است. ماهی تقریبا به همان اندازه از نظر پروتوین ها است که گوشت قرمز و مقدار زیادی فسفر در خود دارد. که از آن یک ماده غذایی ایدئال برای کارهای فکری و خصوصا اشخاصی که از ناراحتی‌های حافظه رنج میبرند ساخته است. بیشک ماهی از نظر کلسیوم نسبت به فسفر غنای کمتری دارد. ولی هنگامی که بتوان استخوان‌های برخی از انواع آن را مصرف کرد، مقدار کلسیوم آن تا حد زیادی بالا رفته و رابطه کلسیوم فسفر میتواند به شست صدم برسد. و سرانجام مقدار کلسیومی که ماهی به نسبت سایر مواد غذایی در خود دارد رضایت بخش است. تجزیه نشان می‌دهد که به طور متوسط باید 500 تا 600 گرم گوشت گاو یا 300 گرم خمیرهای غذایی مصرف کرد تا بتوان کلسیومی را که 100 گرم ماهی به ما می‌دهد جبران کرد. ماهی باید به صورت کاملا تازه مصرف شود. زیرا به سرعت فاسد شده و موجب تولید سمومی می شود که مصرف کننده را دچار ناراحتی های معدرودعی کما خطرناک و تحریکات پوستی از قبیل کهیر و سایر بیماری های پوستی خواهد ساخت. از سوی دیگر امعای برخی از ماهی ها محتوی توکسین ها یا اکتیو است که می پس از مرگ ماهی در گوشت او پراکنده شوند. این مواد در کبد سگ ماهی و ماهی چهارگوش و در اعضای تولید نسل و همچنین تخمهای سفره ماهی، ماهی بروشه و لوشه یافت می شود. ها نیز همچنین در گوشت مار ماهی، ماهی های کنگر و تترادون وجود دارند. ولی در رابطه با دو ماهی اول، این سم بر اثر گرما از بین می رود. در عوض ماهی های تترادون حتی به صورت پخته نیز خطرناک است علاوه بر آن باید بدانید که تمام ماهی هایی که بدون خالی کردن تمام شکمشان به فروش میرسند، خصوصاً در فصل گرما نامناسب هستند و سرانجام این نکته را نیز اضافه میکنم که ماهی حتی به صورت تازه نیز برای برخی بیماریها، مانند آلرژیها، اگزماها، کهیر و افراد مبتلا به آس مضر است. در عین حال می توان با مذرات آن در این رابطه از طریق از بین بردن حساسیت به صورت تدریجی یا استفاده از داروهای ضد حساسیت مبارزه کرد.